شهده داریم شهده بسیاری داریم که مقامات بالایی داشتند و ظاهرا استادی نداشتند چگونه بدون استاد میتوان به این درجات رسید؟ آیا بدون استاد هم میتوان رشد کرد؟ شهده تابع بودند. تابع مرجع تقلید اعلم بودن امام حضبان الله تعالی علی ازشون میپرسیدی از بچه های که برای چی اومدی؟ گفتن امام امام فرمود. اونایی که مقدار تسلطشون بیشتر بود، می مقدار کرده بودن تو اون محیطای جبهه نمی گفتن امام فرمایش کرده فقط فرمودن بر اینکه خم به ابروی نیاد. بعد خیلی معرفت به معنی خاص صرفان عملی و اینها نا. نداشتن اکثرشون شهدا همه استاد داشتن آجه قا پس بله استاد امام, امام بود بله, بله. رحمت الله علی. اون بحث آجه استاد داشتن هم یعنی اینجوریه که مربوط مراحل و مراتب بله حتما باید خدا نصیب کنه یه استاد به حقی یعنی استادی که مجتهد باشه مجتهد باشه حتما و با یه استاد مسلمی پله به پله، قدم به قدم پیش رفته باشه بله استاد نیست شاید به جایی رسیده ولی استاد نیست استاد این دو صفت رو حتما داره بعضی ها شرز و خیلی نادرم مثل یوسف اللهی مثلا منی که گیر دارم در همین مقدمات استاد لازم دارم یا همین دستورات نه باید از همین رساله ها عمل به تر که حرام رو شروع کرد یکی از چیزهایی که خدا به انسان میده انسان دعاش مستجاب میشه از خدا درخواست میکنه که خدایا تعالی به من بده من رو به خودت نزدیکتر کن من جا هدفینا که نهدیان نهام صبلنا خدا اون راه های رو راه رشد و کمال رو جلو پا انسان میزهد